رحیم و الحمد لله رب العرکیم و صد الله علا سیدنا عزو بلده و آله القیبین قاهرون المعصومین و دعس دارنا سعلا عزائی الماشرعین اللهم عنا خیر رجیل محیم و دیده همارا انسان موناقبش آنمشان مراجبتان واضح میشه تکمیه خود ده و انجام بدید بهتر تا اینجا مجموعه از کلمات روایات شماعید تاریخی آیات رو هم رو راجب سه بنا هم بود رو داریم به حد ساحل واضحی نشیم چون هم عبادت شهر توسی بکنیم و هم بعدی عبادت دیگر رو ظاهرم بحث حد صاحب رو هم باید در همین جمعه تحرز میشیم که در واقع حد صاحب آمده بعضش رو سابقا خوندیم که باز برمیگردیم در کنگیهش بعضی دیگه شو هم در وسائع و در کتاب جامعه و در احواق حدود آوردن، یعنی در احواق وجود خیلی از اون مواردی که حدش مثل به اصطلاح خبش مثلا زمان سری بلا اینجور چیزا یه انعاده دیگر که بی هر اوزه هست مثل نباش و ساهر اینا هایی که توی اون ها نیست با اونها هده اونها اوزه هم. و این مطلب هم سابقه داره یعنی مرمومه شیخ کلیدی باقی داره با واحد نباش با واحد ساهر اکتاب حدودش سابقه داره اینجور نیست که اون وقت این اون حقیقت رو در هم از هر آدین در این کتاب جامعه و احوادیس که من دارم آخرین جلد هم. این چاپ نیستی بده نشدن چاپی چاپ سی و جلدیه که جلدیه و در این جلد سی که دیگه آخرین بسارد. جلد کتاب است یه مقدار قدور داره در هم و دیارت. و ایشان دیگه خاتمه نداره این کتاب به جمال آدیس مبالیسی که راجب اصانید و اینها یه موقعی در اول جلد اول داره فهرس کتاب هاشو داره اما مثل مرموم وسائل یا مثل مرموم هاجی نوری یا حتی مثل مرموم درها که چند جلدش اجازاته این رسمت ها رو دیگه این کتاب نداره در باب دوازده اول حد محارب و محتم تحت تنباه بیرونی که داده یشون بانون هرده محارب و این ها ما به دراز درست فیض سر از جلد سی و یک از این چاپی که دست من هست چون شنیدم نسته که یه جلدی دیگر هم چاپ شده اون الان یه چاپ دیگه هم شده باشونی میدونم سرد و سوقون حطب چی و ایشون از کافی و تحضیب راجه به تحضیب چون زیاد نوشته شده گاهی محبومت کنیم مثلا گردی ابن ابراهیم محبومت شهر توسی میگه ابن ابراهیم یا نیوم عمال ابن یکیاب وقت آیا میمیسن به اصناب دیگی من علی ابن ابراهیم حتی مثلا میگه محبومت شهر توسی این روایت در کتاب علی ابن ابراهیم در مقابل کلیفون کلونی هم گردی ابن ابراهیم پس این مسئله دوگمی من یه توضیحی رو سابقا نهارد کردم دیگه سرکار ن این <متحدث> مطلب که اگر شیفتوسی اتضابه اسم کسی کرد از فکار این درست نیست این دو اول مشکه ها آمده از فرموله اما توجه نکردن به بریه مشکه برد اما اول مشکه رو درسته از کنی جایی که شیفتوسی از مشایخ بلاواسته این کاری نهرموده از خافیه به تو رو این ظابطه رو در ذهن تون باشد هر جا شیفتوسی از مشایخ کاری مثل ارگر مثل محمد بن یحیان مثل احمد ابن و که اولی از شریعی اگر از اینها افتدا بکنه از همون کتاب کافی ایست و جایی دیگر روی گذاره که ها در وقتی این میشه قرارد در اینجا مثلا شیخ توسی داره محمد ابن یحیان بعضی خیال من شیخ توسی مستنه از کتاب محمد بن یحیان کرده در عبالت کنید نه شیخ از خود کلمی نگرفت در بنابراین مشیخه در سلسله یعنی ایشون عقیده داشت که که کافیه و بعد و جمله از که از علی بن محمد بن ابوالقاسم را بر نظر ایشان اینه که اگر از مشایخ نروید پس ما حدیثو اولا از کافی میکنید مرقوم شیخ طوسی ها نوث کافیه این جای کافی به خصوص خیلی اختلاف نسخه شدید داره همین حدیث در مهندس عبادت صاحب ساحل. عنوانش باب اهل ساحل در کتاب کافی جلد اما اختلاف شدید من هم هنوز نمی حالا چی شده خبر ندارد مثلا در این نسخه که ما الان داریم میگه عبدالرحمن بن یحیی و محمد بن الحسین وحبی بن الحسن، عن محمد بن همین نفر رو آورده که از محمد بن همین در در کتاب شیخ توسی تحذیر این تو عباده. محمد نیهی ها ان محمد بن الحسن، به جبا دو ها با آورده و وحبی الحسن حسن حالا شب نسخه شیخ اینجا بوده نسخه کافی که شیخ داشته البته محمد بن حسین این در این محمد بن حسین این در خطابی که زیاد که محموم شیخ کلینی ازش نقل می کنه استاد مباشر بیشان نیست و شاید غلط باشه یکی سیگری باشه محمد بن حسین محموم استاد آی خویی در زید کلمه بشار یا برنزو هم بشار ایشون نوشتن که اصلا در نسخه قدیمی که ما از کافی داریم دهف اسم احد کلا نیست در کتاب کافی اصلا اون دو محمد نهایی ها نیست در کتاب مصیح مکتوب ایشون نوشته دارند در مجموعه قدیمی ایشون مصیح در اونجا هست حبیب بن حسن از این سر خطر باید یادداشت بخیر حبیب بن است. اون دو نفر اسمشون نیست الان الان برم گفت که چون نیز خواهد حافظ رو، من واقعا منم واقع متحیرم به نظر من چون مربوطی شکم داشته دید چون شکم بوزر تحقیق به نظر من این که نباشه صحیح ترسان هم بیوندان تنها باشه احتمال میدم به هر حال این رو ما الآن درست نمیدونیم دقیقا که آیا این نسخه کافی در حقیقت در اینجا چیه؟ و چی طور احتمالی که حیبول حسن باشه حیبول حسن خرمیتر اصولا من سابقاً هم از کردم مرهوم در یه عیزه مواز کمی از شخصی به نام حبیبو حسن نام میبره یعنی از مشایخ کلینیس اصطلاحه ما هیچ معلومات از این شخص نداریم اصلا نمیشنست این شخص رو کلن نمیشنست. و اون چنجر که اسم والده تو همین کتاب وجوده یکی اینجاست که نسخ مخصوصه در نباشه در حد نباش اون دوتا اسم نیست حبیقوب نرحسن محمد نرده همین اونجا دیگه صافه اونجا اسم نیست اما در اینجا دو تا اسم اضافه هست در احتمال میدیم که همینطور باشه نباشه یه هم تو همین حدود همیون و هست اگه محمد ابن برمی. چون کلینی عادتا نمیتونه از محمد نبر و حمیدی باسته کنه. بکنه احتمالی که من میدم حالا این شخص مجهول چیه هویتش چیه احتمال میدم قرب اسناد داشته لذا کلینی اسمیشون رو بوده. این قرب اسناد. این عادت کلینی باید از محمد ابن و به دو باسته نر بکنه اصلا ایشون پیر بوده چی بوده اسمش برده در حال ما حبیب ابن حسن رو فعلا نمیشناسیم. مواردش هم در روایت کافی زیاد نیست خیلی محدوده روایت محدود داره و به ذهن میاد که قربه اصناد داره این شخص نه ما نمیشنسیم نه. و قاعدتا اینطوره. طوره قاعدتا از میکنم وقتی مثلا با حبیب رو بگنه حسن و اسم بود تنابور باید باید حسن معروف باشه اگر خودش خیلی معروف باشه میگه حبیب مثلا میگهم ما نمیگهم زراره تو نهنگیم میگه عنو چون مشیوره معروفه قاعدتا در تحابیرشون این طوره. ما از این چرط آشنایی نداریم بعده اون کسی که تفسیر علی ابن ابرامی نوشه نه خود علی ابن استاد اخطاء بعد از ابن نزهی اشتباه اکثر کسی دیگر این کتاب که ما علی نیست اون کسی که مؤلف این کتابه نه علی بن و استاد شاعری اون چه رجال بوله اشتباه اگه ایشون توصیف کردن که در علی موجود باشه در علی حبیب ابن حسن ابان آمده احتمال حبیر ابن حسن ابن عبان آجوری آمده احتمال در حد احتمال وقت اگر این باشه اون که من اعرض اسم حسن برموشه محروف بوده ما در یک شخصیت حالون منوی سال علمی هم باشه یک شخصیت اجتماعی در این زمان داره بنامه حسن ابن عبان قومی حالا آیا این همونه احتمال هست حسن ابن عبان این مرد وزرگواری بوده ما هم از او آشنایی نداریم بزرگوار نه به لحاظ حدیثی به علمی مرموم حسین سعید که ساکن احواز بوده، ایشون وقتی میان قوم که کتابهاشون در قم حدیث میگن منزل این حسین نهوان وارد میشن ظاهرا شخصیت اجتماعی بوده وقت پسری داره نام حسین یکی از راههایی که الان اصحار ما کتاب حسین سعید نه همین پسر حسینه نه حسین نه حسین آیا این هم پسر اونه من به حرص خودم احتمالش رو میدم که حبیب اونه حسن پسر همین حسن باشه، اونم هم نمیشنسیم پدرم نمیشنسیم خود حسن رو هم نمیشنسیم حسین اونه حسن هم نمیشنسیم یعنی هیچ کنون این که خیلی فرید اون حسین اونه در حسانی هست در اجازات هست اما او رو هم ما به عنوان رساقت نمیشستیم مگر به اعتماد قومی ها یعنی حسین گفت که حسین قصر حسین نرمان پدر حسین سعیل مندل پدر ما بود و این کتاب های حسین سعیلی اینو در قوم نرگه کرد این کتاب تو قوم جا افتاد من در حد احتمال شخصی خدافاری شدن احتوال نبانده. به ذهنم آمد که این حبیب بنان شاید دردار حسین نرسنه حالا یه حاله نه اون رو می نه اون حسین رو می شنسیم یه رو حبیب رویش رویش نمی که این احتمال نشون بیده که اگر حدث من درست باشه در قوم داشته حالا حدیثشناس بود یا نبود بحث دیگری و مرحوم کولینی هم احتمالش بر این شخص بر این حساسه که به جاحتی داشته حالا یه حاله مرحوم کولینی قربه اصناف داره حبیرون بن حسن در کتاب تحارت یا صلاف کافی به خصوص یه موارد که زیاد نیست از ابو داوود اندر حسین سعید نموید اصلا بعض رساله هم که این ابو داود کیه چون مرموم کلونه آسن به دو واسطه بارده از حسین سید نمو بکنن یه باید سر بر دو واسه اما منش اشه ابو داوود شخصی بوده که مرموم کلونی واسطه واس شبیه نیم حالا اونم مجبوله اون ابو داودم نمیشنسی زیاد نیست احادیسش مواردی ایشان از کتاب اوفرد حسن سایدکیسی هم در حمله این آقا هم دو سه تر در باب حدود یکی از محمد دو, دو, دو ساشت محمد عبدالحمید یکی از محمدان ای ولیده محمد ولید به اصطلاح بجلی سخه از اجرار سارخ است. احتمال میدم احتمالی که خود هم میدن رجالی تا حدا ننوشته احتمال که تسر همین شخص باشه و از وجه های قوم بوده محترم بوده اما چهره علمی نبوده به هر حال فعلا این کلی کولینی الان مشکل داره ما فعلا ایواز حسن رو نمیشناسیم محمد نبدالحلی بد نیست ان بشار اینجا هم نسخ مختلفه بشار هست یسار هست چند جور در اون موردی که حد و باشه باش اصلا سیاره ان سیار اینجا هم آقای کنه برزی از مسخ سیاره اما الان در کافی همین سنده یعنی حبیب اون محمد اون همین، ان سیار ان زیل که به نظر من حدیث تختیل کرده ایشان یک سنده ایشان همونی کنن فقط در اینجا در این کافی مطبوع ما بشاره در اون مورد یه سیاره سندر یکیه دقیقه تا هم ما مجهود زیاد برین که اسمشون بشار یه بشار نیسار هستی نسبتا خوبه آیا بودیمون قادمی که دارن که اگر مشترک شد لحظ هم میشه در سر؟ هیچ دل علمی نداره احتمال داری که این بشاره نیسار باشی هیچ نقطه علمی نداره اصلا الان برای ما خود نسخه واضح نیست بشار هست یسار هست سیار همد لذا این حدیث به لحاظ سعدی بسیار بسیار مشکل داره حالا مزاحم اینکه که قومی های دیگری که بعد از ایشون بودن مثل صدوقی رو نقل کرده، خیلی مشکل داره زید شهام عدی عبدالله قام از ساهر یا درابد سیر غربتن واحده حالا ام رسه این ارز کاری خوندیم یادتون باشه در کتاب محلا ابن هزلم خوندیم که ابن هزلم اشغال میکنه. انصافا از کاری سند سال حدیث که مشکل داره ولی کلی میذارم قبول کنه بعدش معموشش شیخ پوسی قبول کرده معموم صدوق نیه ودیم مشکل کار اینه این, که این جور چیز فکر نمیکنیم حکم باشه. یعنی تعذیرات و احکام کیفیی با طبیعتا واضح باشه. اون که روزی که به نحوه شمشیرش فرود می کنه زوری که اون آگاه داره فهم می کنه یک هر نغمه عادی کرده شمشیر هم قمس و شمسامه سمسامه, سمسامه داشته. این شطور که میذاره بود از کوهان شطر میزد میذاره تا به زمین میرسید رسیت شطور نفس با شمشیر این وقتی خوب شما فهمیدن حسابش و زورش هم فهم می کنه اون دسته معروفی که عمر شمشیرش زیر یک شطور تا تو چادر تو میدین دستش رو خب بازوی منم با بازوی فرما آخه تو که سیتی ما عتیجه که عذبی بازو می کشه تو نازودی تو دیگه شما چرا حالا مثلا در جلد جلد با بازن... زن ها کجای بدن شده زن بخوابه چیزی که میزن چوب باشه چوبش مثلا تازه باشه کلف نباشه نازل نباشه اصن حتی دارن که شلاق می‌خواد بزنه شاید دستش بالا بره مثلا از شانه شسترش بالاتر نبره تمام نیا زیر شده البته خیلی وقت‌ها که تو درس صحی اومده که متوقع واقعیت نیومد شاید شاهده خال تو کوتوب ارسطو من خیلی با دقت می‌شم من به تو طرح ما وایده احتمال میدم ده قبل احتمال میدم که ائمه چون ائمه اجرائیات نداشتن که کهتون داشتن میاداش قبول داشتن لذا در ت زیاد آمده خیلی با آاپ این بشین باشه بشه این بهستانبلچه بزنه لغ بکنه نکنه ایستاده باشه نشسته باشه تمام خصوص در روایات ما زیاد نازده قبول اما در کتب فیه ما مک برد سری مثل شق و علامه چرا آمده؟ روی, روی اصلاح کنم قدود اونها بزنیم کنار کنم نه اونها بزنیم کنار بحث اجراییه بحث اجراییه ای از قبول کلیه مثلا الان یه از رو بر بخشن واحد این واقعا ابهام داره چه شمکی باشه چی کی اونو بزنه و بعد مثلا پرسیم هر شکاف برداره و نمیره یک ای زندگی اینطوریه طوریه این خیلی طور عجیب غریبه یعنی. این نهره تصور بکنه لذا سردش هم که خیلی مشکل داره التظام بین که این انسان حکم بین هم و بین قبول بکنه مشکل خیلی مشکل حالا این مطلب رو هم از کردیم اهل سنت هم نرمو کردن اما نه به پیهمدر به غیب پیهمدر نسفر زده ممکن که این کلام از امان تغییر ساز شده برای فعلا ما نمیتونیم این مطلب رو الان قبول بکنیم انصافا خیلی مشکل داره این راجع به حدیث اول راجع به حدیث دنگوم در این مسترکتی از شرف الاخبار در این کتاب جامعه الاحادیس از این مسترک نروی کرده افتردم احتمال دارم. کتاب چاب جایی شده باشه شرف الاخبار چاب نشده تا دیگه چاب شده موجوده دو جلد ظاهرم تو ذهن من دو جلدش یادم اشتاد سه جلد باشه شرف الاخبار مالا قاضی نومان مهتری حتاب کتاب دائمون اسلام شرف ال انصافان هم متعدده که نستوزان پوایز خوبی دارو شنم و و مرسل اونجا هم سرد در اونجا در سیاق حدث شهدا به سفرین که چه کسانی درس به از کلمی توضیحش از کلم تقریبا گفت که دو سه تا رساله ما اندار تاریخی میدونیم اولیشان هم زمان اصحاب خود عویر بودن تصمیه تو من شهر سفی من الراعصا و مشایع دارم و, و علماء هم که تعبیر من اسمش تحبیر نسبت داده شده به ابو رافق اصلا بحث این بود که اینا اصلا شبه ایجاد می که این اون جنگ داخلی کرد بسنان کچی کرد وقت قیل از این که همین مومونی کرارا اصلا داشن که رسول الله این جنگ ها به من خبر دادن اضافه بر اون سعی کردن حقالیت اونها رو از این راه اثبات کنن که از بزرگان و اجلال و مدریه و کسانی که در بندر بودن اینها هم در جنگ سپی از طرف امیر و ممنونی بودن خب شهرهای یه خیلی نورانی دیگه اویس قرنی هم دیگه اوهی سقرانی هست شدیدن تو توی جده اوهی سقرانی هست اممار هست اممار یاسه به اسلام اممار یاسه هست زیاد بزرگان که وقت از کتابی نوشته به نام قسمیت و منشهد سفین قسمیتی در سفین بودن از بزرگان از وعصا از اشخاص اهل فرض بدری ها اینا ها اسم برده یکی از کسانی رو که با عنوانی که این شخصیتی بوده اسم برده در جنگ سفین حاضر شده جندگون کعبه که من مثل از کتاب مفضل کتابشیست بودن در کتاب محله، اینجا ایشون از کتاب جنگو رو مثل این رسی جنگو رو از کتاب شرفال اخبار مر... کتاب قاضی نعمال آورده وقتی تصمیه از که شهردار با سفی چون الان شرفال اخبار کشمن نبود احتمال دیدم در مزید اونجا آورده اگر شرفال اخبار چون شفت ده هست از اون که این کامپیوتر پیدا بیشه یک بابی داره در کتاب شرفال اخبار اون رساله اقو را تقریبا آورده تصمیتش را علاق مشهر طرفی این در این کتاب اخبار داریم در کتب این کتاب در احسانه هم بوده وقتی من ایک صحبات رو جبون کنم اینجا نیست چون ندیدم کتاب رو ندارم کتاب دیدن چون رو اخبار رو ندارم فعلا نیمونتون بگم که در اینجا یا در کتاب دیگری چون که از این ابو رافه هم قال و جند و خیر این جند و خیر جندوبه مکعبه که قصه شموز ارض کردیم قطعه به سفیه وقتی با اموان ایکی از مزایه یعنی ایکی از عدله این همی که ارض کردن خوندیم از اون عباره و هو اللذی کان رسولای از تجزو بیه لیله و هو یسوق اصحابه در عقب میگن به منبر می من تنها بود و ما جندوب اله افتر اما رسول بودن جندوب کی از اون اینه حالا ما اصراق و هر تذکره جندونه بقال نه امرج و نه نقاض او جندون من امتی یه مره با غربتن واحده غربتن یو فرق و بین الحق و الباطل یب اصحالا یوم القیامه امتن واحده که میخوام دیگر این شهر که پیغمبر خبر داده این در سفتین آمد و قتل معلی وقت اون قصه ولید ابن قربه رو از کردم دو سه جونه رو شد ایکی چیمی در شکم گاه از دهن گاه میره توی شکمش صادقی بود از رسانگیم یاد بیرو، و جندو هم چشمشیپ شد. نتیجه که هم زحم و او یورو اندول نزک کرد. که بعد ولی اعتراض کرد و به عثمان با هستید و عثمان هم اعتراض داشت که تهرانشش میکوشی و عموی او میگفت نه درست بوده. هدفش این بود. ایا آخرینی بسیکر خب بلد این که آنگی خیلی دریفه. این هم مسیرش چیز بس. یک کتاب تسمه سومان که اون معروفی هم دوست من، سدروسیان بحث دیگری کند. کتاب جعفریات این مسئله صرف در جعفریات آمده به اسنادیان علیه الصلاو الله علیه اننا اعثم سحر النبی تقله. این مطلب ببینید در این کتاب جعفریات یا کتاب سخونیست یا همون کتاب جزئی از کتاب قضايا و احکام و این ارز هیچ شاهد تاریخی نمیده بلکه به اند در روایات سکنومی و همون, همون کتاب جعفریات آمده که صاحب مسلمی یقتر و صاحب کفران لا یقتر دریبش همین است که به ابن عرسل رو نکاشن این روایت خیلی عزیز ببینید فرق بکنید حالا این چطور توی جعفریات آمده من شرحال جعفریات عرض ارز کردم چطور نسبت داده شده به مونساده و که نگاه که بکنه اصحاب کلا ترمیش کردن چون هیچ شواهد نمیسا من اولا اموزم بحث حدیثی که داشتیم این توضیحات دادم با اینکه که احتمالا کتاب جرکلی است که شما احتمالش خیلی کتاب سکونی باشه این کتاب سکونی باشه دقیقه بکنیم همه اصحاب این قصهات رو حدث کردن همه هیچ از از نقل کرده. چه راست هم قطعا مخالب حتی در نوری که اهل آمه داره راجب این ابنه هستم حتی داره که آیشه به رسول الله خب این را که این سه تو توی چاه برده بود حضرت همه آب چاه رو برای مردم خراب بکنم هیچ کار نیسته انجام نداره اما اینجا داره که قتله به رسول الله اصلا غبات سکونی به احسش داریم نه این که این پس این جزء رباره که اصحاب هست کردن و مجرد حدودش از جهفتر یاد در کتاب سکونی عرضشی ندارد حدیث بعدی رو مربوم شیخ توصی منطره از کتاب سفار قمر کردن از کلی محمد ابن حسن سفار جزو بزرگان اصحاب ماست کتب داره و حتی هم خودش که شده کتبش هم خیلی نجاشی از آثار علمی ایشان کرده نفر از خود ایشان و حسابا خب شفته بزرگی بزرگیست خطب فقداریشون ایشون, ایشون یکی از کارهای اساسیش نقل میراثه و در این حال خودش هم تولید داره یعنی ما از در قم ما در مکتب قم کار یکی از کارهایش همون مثلا تصحیح و تنقیق و جمع آوری میراث بوده تولید هم در خطه قوم هست این تولید که نباشه آخه این تولیدی رو که ما در خطه قوم خبر داریم کتاب تولیعات همیعیه که نام بدون شد و عزیز ربیت الله از اون مثلا همین تولیعات نام به از خیلی از سوالات دارن اینا دارن از اشاعر قوم تولید دارن چون به یا در خراسان، یا در مکه این ایشان نیست پس محمد نحسن صحفا وقت هم که برای ما هنوز خیلی جای ابهام داره بیشتر این قسمتی که ما از محمد نحسن صحفا در آن در فرق داریم هم ما شیخ سروسی خیلی انفراد داره از درست کردن شیخ سروسی در کتاب تنظیر جلد درمانش در بحث مشیخه نوشته من سر کردن همه احاضست بیارم برای که استخصا کرده باشم از شم موقع این موقعشون استخصا نکرده خب مثلا این ربایت شاید برای این استخصا آورده نمیداره این ربایت شیخ سروسی از اینجا آورده نه صدوق روایت آورده و نه مرموم کلینی ذکر کنده باشه سفوار بود اما این که از سفوار گرفته باشه اوشن نیست در کتاب کل یعنی ما عرفان رو در ادوار محمدی نخصن یعنی اساسا در یک مورد که سفوار باشه ظاهرا در رساله میشن در تشریح محمدی نصر یک در اول کتاب کافی اسانده کافی ظاهرا نباشه سفوار نباشه امکانی نمیدیشد ما شهر نره زاهنه محمد نهسن ایشون هم قومی هست بوده. ولی ایسه به حالا محمد بوده که از که از اون نفیل میکنه از صرفاه نیست چرا در و صرفاه کتب خیلی داره این خیلی محمد متاسفانه باز معظمش انفرازات شکری هنیشه رزومه من خارج ام. این همیشه الان چه رزومه من خارج ام وجود دارد. کسی دیگه یعنی یا مرد من صلوح یا مرد من کرهایی این من در وقتی که عبارات هم اهل سنت رو کنم که در محاوره شریعه اگر گذشته باشه من تعلق دارم استدلال به تعلم میشه امن است. قبلا آخر اهل دیگر بوده. این روابط شوخانه آخر اهل دیگر است. سنت هم دارد لیکن توی چیز نیست این تو رسول الله این رواست اینجا آمده اید. در حالی محسنی که روایتی با که مرمون شیخ و اما شرح تاریخی پس مرمون شیخ این رو کتاب تحقیقی رفته که میراس قومی و انصافت هم معلیت هم معلیت هر دارشون تزدیر شده از حسن ابن موسایق هالا نمیفرید واقع خشاب بوده تخت تحت درودگر بوده تخت فروی شده لجار بوده بهحا خودش بوده پدرش بوده ن این هم مثلا موسی خشاب جز عجلهی اصحاب توصیق شد تو نجاشی تاییدش کرده مرد بزرگوار ت اهل کوفه است شواهد ما نشون میده اجمالا میم شون در شهرها ایشان نوشتر شده صفا هم از مشایخ قوم نقو میکنه مثل احمد اشعری هم از مشایخ کوفه نقل کنیم چون متصفانه الان نوازده به جامعی ما خیلی دقیقه دیم خیلی چهره رو دقیقه دیم تشخیص تفسیص و این مسئله این بود شوخی من تایف اوتوغرافی های حدیث نظر ما خیلی مهمه در حسب ظاهر به کوفه آمده من موسفا شباهد نویشان هست مشاعف کوفه زیاده یکی هم همین حسن ابن موزای خدشابه که ایشان توصیح شدن من اما یاسب نه کندو شاد تو بحثای رنگه ما یکی دو روزوجه دو به سکونی صحبت بکنیم یاسب نه کندوی روز که سالی که شیف با سکونی اسمشه بوده و دیگم توصیحش ها از همون امارت که اصحاب به رویت یاسب عمل کردن خیلی ها آشنا... آشنایی ما با این آها نداریم یعنی یکی از مشکلات ما آراجه به یاسب نکندو راوی از ایشان همه خشابه همه از یاسب نکندو و هم یاسب نکندو ببین خیه هست هست یاسب نکندو ببین خیه هست بجرین همه ام اتحاق کوفی ایشون شخص بسیار مزرگوار و زیر وقتی نما، سابنه سبودی که یکی از عبیسه ما شیعه کم داریم که در پی هزاب خود در ایسان توی جا این بیشانی و شده هم نصفتر باطل بشه کم داده شده همون ما کم داریم یک نفعی در روبوت ما دونجور برما گایی گوزن دو نفرن گایی گوزن یه نفرن فقری هست و سفرست حقیقی ایشون و هم هم دو بحث نده از که این دیازه بودن از عبارت هم همیشون تو کامرس زیاد هست مرموان صاحب این اعاضی سر شمیه به طریقه می و فکر میکنم کنم مجموعه مورد چیدی بیشتر چون با درستانی کامپیوتر نگاه نگردم همین صاحب به دینه شده همین صاحب از سران نموسای خشاب انجر یاسف کلوب از حسار درما هم جعباره نمحمد در اینها هم شما رواید حسار نهما زیاد دارید فیگر رواید دادیم خاندار محبوبی اما در همه اونها نبی عبدالله دلاره از اجایی اونه که این روایت که با این سنده همی سنده همی همشه اینطوره هنجه افراد عبیه هم آبای هم هم. این شبیه کسا بسکونیه از, بس از ما قبول کردن به خاطری که خبنه که ازبونه فیسته هم داد درمه فقط دیاسه به کلو بکی چون شیخ با نجاشی قبول شد. آیا اون اقایت شیخ به درد می اون بحث دیگه ایست اینشالله خلاله اینجا آنجه این اما خیلی از حالات اون که ما داریم خیلی از اون شده داره می که آیا عبارت شیخ در میاد توسیق قیاس ابن کمبور یا در نمیاد اون جای خودش بحثی که هست اینه که به نظر ما اینجور میاد اونی که به نظر نهایی ما میاد اینه که این یه نوشته خاصی بوده که به ساقه ابن عمار از امام صادق داشته که به امیر مؤمنی منصوب بوده احتمال هم داره جزی از همون کتاب قضايا و سال هم باشه احتمال داره یه قسمت از این کتاب حالا یه حاله از عجالی به این قسمت اینه که تمامی ها به عنوان جعفر انه عبیه انه علی انه عبیه و این تعاقیر چون کس ها به نعمار از کردن روزه اجلای از خواهر زیاد داره با هیچ نتای از شیعه نگفته <تصفيق> به به نظر من ایشون یک مجموعه یادا شد هفته که شما رسیده به شما رسیده شده بیشتر بوده یک مجموعه یا از امام صادق داشته که به همون زرگه سنت رو ده انجبران عبیان آقایی این رو برای قیاس ابن کلوب نهره کرده فقط چون این از عجالی برد کردم همش انفرازهای عجیبی داره خفشاب قد از قیاس قیاس از از کسی دیگه نردن کرده و با این محض انجهفر انحبیه من قد واضحه به صاحب نعمال صاحب نعمال از امام سادق امام السلام این ای روایاتی که اینجوریه این اجمالا این که من دارم کنم کسی احتمالا ای شمالا مرحوم های کرده احتمالا و دنبال ریشش هم نرسید اما من ایشا چون بحث سخونی رو برام سر بگم احتمالا این مجموعه با مجموعه روابط سخونی همیشه باشه شاید ایشا رو توضیحاتش بده کنم امروز دیگه وقت داره تموم میشه خواهد و این نشون میده که اثار نعمان غیر از اون احادیث کتاب در رساله ها یه مجموعهی و منصوب به امیر المؤمنی. حالا ما اسم نظام شیم مصند احل البر به عنوان مصند احل البلد. مراد ما از مصند اون روایت که از امام نعلم میکنه به اصنادی هی امیر موین رسول الله این مراد اهل احل البر مثلا روایت که لد کتابهایی دیگه داره اصحاب یسا از عبا این جمله ما از از جعفن عربی آقای این فقط چیزه که به قیاسه به کلوب روزه قیاسه کلوبم هم فقط به خشاب روزه خیلی عجیبه نقلیبه <تصفح> <تصفح> و شیخ توسی هم قیاسه کلوب رو در اداد سکرونی آورده اینشالله ارزو کنیم شیخ توسی یه روایت یه نمی قبول بکنیم چون امام سادر فرمده ارانه در حادثتون لا تعالیمی ولی از همون ها. لا آمار و ها ان علی هم. خیلی عزیبه بعد یه اصحاب به ریاض در کلوب و سکونی عمل کردن کرد. اول شهر توسی خیلی داریم. اول من کمی. اول کسی ما اینجا خیلی دقیق است. امضا. بیایید از این جهت مثل سکونی. جهدش هم اینه که روایاتی رو فقط سکونی این ابی عبدالله آباد. این ابی عباد ایشون از نعمار اونی که من الان به ذهنم میرسه در مجموعه چون این بحث و من از کردم مجموعه ای که به ذهن من میرسه مرحوم اصحابه نعمار سیرفی. حالا یا کتاب خدایه و سنن و بوده که احتمالش شمس یه ایشان که هم گفتیات باشه یا همین مجموعه ربایات سکونی بوده که اونم احتمالش هست یه مجموعه روایات بوده که امام صادق مصندن ما اصطلاح هم خیلن محققتا اهل احریبیت یکی از این مسانی در احریبیت بوده این رو ایشون برای قیاس ابن که سنی بوده نرحب کرده خیلی عجیبه. این همه ما رابی داریم مثل ابن عبی عامل. برای کسی دیگه هم رقم نکرده ولی شیعه نه به نظر من دیده طرف سنیه یک چیدی که مناسب با ظهور باشه از امام صادق برای اون نرده کرده ظاهرش اینطوره. ظاهر این مطلب این, این طوری ولی ازاد بشه داخل این تصوری که استاد دیگر من فرمونده هست که این روایان خود جید داره نه خود جید نداره مشکلی ها دسیار مشکل برد و اگر آقای دیگر چون زختم نداره نشدم دیارم اگر آهین کتاب رو بعد سالت رو جماعه رو نگاه بکن همین اصاب و نرمان رواید به توس جماعه دیگه امام سالت رو برنم فرنان شما که مسجد جامعه یا کوفه هستیم جماعت دینا حاضر بشین جماعه سالت رسول مصر اصاب و نرمان, نرمان گیر نگفتن که امام شما فرمده رو بگه و مدت یک همسایی داشتن اون سنی بود دیدور بند شما که او جامعه رو ب سال و نماری چیزی را گفتن و مرزو که دروغه چی میگفتن از این که این هم تو نماز میایی تو نماز کماعه حالا فهمیدیم تو حمد دروغه این اساس نداره تو از روافظ میگید خب در اون بخش سالت جماعه همه اصابه نماره از مجموعه روایت حالا چون اینجا یک افها میگرده، چون افهای شیخ حالا من الان نمو بگم القوم شکر طلب تصاول در بحث سکونی این عبارت شیخ در خود ابهام میذاره که برای ما هم حل اون ابهام خیلی مشکله بعد از اون بر خودش میذاره عبارات شیخ حمزه الهام اولا اون عبارت زاد نظر به خود حادثه تشون الله تعالی و اسماء ها در هیچ مثلی فعلا نمیخواد چیزه تصدیار و عوده بر عوده بر عوده در هیچ مصدری بلا استثنانی دارات ما نداره یعنی در تمام مسادر ما منحصر از فهرم مرسلم در افته هیچ جایی دیگه نداره این مرگوز بود لکه اضافه بلکه این نقطه که حالا مشکل مصدری و سندی داره اصلا مشکل مضمونی داره مضمونش تأخیل شده مشکله چطور شده شیخون عبارت رو عباده و تفصیح کرده بر مثل یاسم کندوب و مثل اصحابه مثل به اصطلاح سکونی این چرا در بحث بعدی مطرح پس این کلیه یه روایاتی که به این طوره اینا یک مشکل تنمی داره اون مشکلش اینه که اصحاب یک از امام صادق داشته برای شیعه ها نقل نکرده الان تقدیر صحت اون مصند چون یک مشکل داره که از نفهم اون مشکل داره که اصلا اون مصند رو از امام گرفت یا اجردیه گرفت بعد توضیحاتش رو بعد عرض میکنم ظاهر اواز کرده امام گرسه احتمال میگید از غیر امام باشه. به هر حال بعد توضیحاتش رو عرض میکنه این مجموعه این مجموعه کلا مشکل داره سنادش هم یکیه اگر آون هم وقت کردن از اون تو بردش قیاس تنها آمده تو دقت بکنی همه جا قیاسه کلوب نیست تو برد جا قیاسه تنها لیکن قیاسه انه اسفان برنه امان یا همون حسن رو موسای یا حسن رو موسای آمده یا هنه خشاب آمده داریم؟ انابون متعدد کریم؟ لیکن همه اینا یکیه میتونه انسان یه مدارش هم با سکومی اعتبار داری یعنی با, سک... با راضی سکومی اعتبار دیگه من بیش از این توضیح میدم و در اینجا این همون که ما در کجا به احل سنت کندیم معلی امکان کان من تعلم امیدن سهرشه هم کان آخر و حد او القتل و الا عن يسوع. این حد دواله قتل علی یسو، سر استاد دین رو تعریف کنند این مطلب رو در تفسیر دادن می خونیم، جایگاه ای تکنولوژیک می کنه. ان شاء الله تعالی. لكن الکذر اون که در میان مؤمنین معرفی و نسبت داده شده دو پاس و حد او القتل نسبت داده شده. وحده و القتل الا عن یسوع با نسبت داده شده. صلی الله علیه و